فصل چهارم تمرین عشق اکنون که هنر عشق ورزیدن را از جنبه نظری آن مورد بحث قرار دادیم با مسئله بسیار مشکلتری روبرو می شویم. و آن تمرین هنر عشق است آیا ممکن است هنری را در عمل بیاموزیم بی, بی آنکه در آن تمرین داشته باشیم این حقیقت مسئله را دشوارتر میکند که مردم و نیز بسیاری از خوانندگان این کتاب انتظار دارند درباره اینکه چطور این کار را بکنیم و در این مورد که چگونه عشق بورزیم نسخه و دستورالعمل به آنها داده شود. متاسفانه باید بگویم کسانی که فصل آخر را با این قصد بخوانند در پایان آن به شدت معیوس خواهند شد. عشق یک احساس شخصی است. که هر کس فقط می تواند خود به تنهایی و برای خود آن را تجربه کند در واقع کمتر کسی یافت می شود که دست کم در کودکی، جوانی یا بزرگسالی عشق را در شکل ابتدای آن تجربه نکرده باشد بحث در مورد تمرین عشق به ما یاری می دهد تا درباره هنر عشق ورزیدن، روش بررسی آن و تمرین این مقدمات و روشها گفتگو کنیم برای رسیدن به این هدف فرد باید خود به تنهایی گام بردارد و بحث ما نیز قبل از برداشته شدن گام قطعی به پایان میرسد با وجود این من فکر می کنم بحث درباره روش ها ممکن است برای آموختن این هنر سودمند باشد حداقل برای کسانی که توقع ندارند در این کتاب دستورالعملی به آنها داده شود تمرین هر هنر خواه هنر نجاری باشد یا پزشکی یا هنر عشق ورزیدن نیاز به یک سلسله مقدمات عمومی دارد قبل از هر چیز تمرین هر هنر مستلزم انضبات است اگر کاری را با انضباط انجام ندهیم هرگز در آن چیزی نمی‌شویم اگر فقط در مواقعی که حوصله را داریم کاری را انجام دهیم شاید تفریح و سرگرمی خوبی باشد اما هرگز به بدین طریق در آن هنر ورزیده نمیشویم. اما اشکال کار فقط در رعایت انضباط در تمرین یک هنر به خصوص نیست مثلا روزانه چندین ساعت تمرین کردن بلکه مسئله این است که انضباط باید در سراسر زندگی فرد مراعات شود شاید عده‌ای فکر کنند که برای انسان امروزی یاد گرفتن هیچ چیز ساده تر از انضباط نیست مگر او هر روز هشت ساعت از وقت خود را با شدیدترین انزبات ها در کاری که بی نهایت یک نواخت است نمی گذراند. لیکن واقعیت امر این است که انسان امروز در خارج از محیط کارش تقریبا فاقد انزبات فردی است. وقتی کار نمی کند دلش میخواهد بیکار و بی آر باشد یا اگر بخواهم کلمه مؤدبانه‌تری بگویم میخواهد استراحت کند. این اشتیاق به تنبلی و بیکارگی بیشتر عکس عملی است در برابر زندگی یک نواخت. درست علت که فرد مجبور است روزانه هشت ساعت انرژی خود را در خدمت هدفی صرف کند که با خودش هیچ ارتباطی ندارد آن هم با شیوهی که خود انتخاب نکرده بلکه به وسیله آهنگ کار مقرر شده است، اسیان می کند و اسیانش در قالب یک خود و لذت فردی تجلی می نماید. علاوه بر این، فرد در مبارزه با استبداد دیگران نسبت به هر نوع انضباطی، چه انضباطی بیمنطق که از طرف مقامی بالاتر تحمیل می شود و چه انضباط منطقی که شخص به خود تحمیل می کند، اعتماد می شود. اما بدون چنین انزباتی انضباطی، زندگی از هم می پاشد، پر هر جمرج می شود و فاقد تمرکز است. اینکه تمرکز شرط ضروری تسلط بر یک هنر است چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. هرکس که در صدد آموختن هنری برامده است به خوبی مطلب را درک می کند. با وجود این، در فرهنگ امروز ما چیزی که حتی از انضباط فردی کمیابتر است همان تمرکز است. فرهنگ ما انسان را به سوی زندگی چنان مخشوش و بی تمرکزی سوغ می دهد که در هیچ جای دیگر مانند ندارد. انسان چندین کار را با هم انجام می دهد. می خاند. به رادیو گوش می دهد. گفتگو می کند، سیگار می کشد، می خورد و می آشامد. انسان به مصرف تبدیل شده که مشتاقانه آماده است هر چیزی را ببلد، سینما، مشروب و دانش، این عدم تمرکز را به خصوص وقتی به خوبی می بینیم که می‌خواهیم با خود خلوت کنیم و تنها باشیم اما در عمل به دشواری آن پی می‌بریم. برای اکثر مردم بیان که حرفی بزنند سیگار بکشند، مطالعه کنند یا بنوشند نشستن در گوشه خلوت امکان ناپذیر است آنها عصبی و بیقرار می شوند و باید دهان و دستهایشان را به کار بیندازند کشیدن سیگار یکی از نشانه‌های این عدم تمرکز است زیرا دست، دهان، چشم و بینی را به کار می‌گیرد. عامل سوم بردباری است. باز هم هر کس در صدد آموختن هنری برآمده باشد به خوبی می‌داند که بردباری شرط لازم برای موفقیت در کار است. اگر شخص به دنبال نتایج فوری باشد هرگز نمیتواند هنری را بیاموزد. با وجود این، برای انسان امروز بردباری نیز همانند انزبات و تمرکز کاری بس دشوار است. سیستم صنعتی ما به طور کلی عکس این را پرورش می دهد. سرعت همه ماشین های ما برای سریع کار کردن طرح ریزی شدهاند. اتومبیل و هواپیما ما را به سرعت به مقصد میرسانند و هرچه زودتر بهتر. ماشینی که بتواند یک واحد کار را با نصف وقت ماشین قبلی انجام دهد، دو مرتبه بهتر از ماشین قدیمی و کند است. البته این وضع دلایل اقتصادی بسیاری دارد، اما مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر، در اینجا نیز ارزش‌های انسانی را ارزش‌های اقتصادی تعیین کردند. منطق کار بسیار ساده است. چیزی که برای ماشین خوب است، باید برای انسان هم خوب باشد. انسان امروز فکر می کند که اگر کارها را به سرعت انجام ندهد، چیزی یعنی وقت را از دست داده است. با وجود این، وقتی هم فرصتی میابد نمی داند با آن چه کار کند، جز اینکه مثل همیشه وقت کشی کند. سرانجام یکی از شرایط آموختن هر هنری علاقه شدید به استادی در آن هنر است. اگر هنر مورد نظر فرد اهمیت فوقالعاده نداشته باشد، هنرجو هرگز آن را نخواهد آموخت. چون این فردی در بهترین حالت یک متفنن باقی می ماند و هرگز به مقام استادی نمی رسد. این شرط به همان اندازه که لازمه هر هنر دیگری است، برای هنر عشق ورزیدن نیز ضروری است. با وجود این به نظر می رسد که نسبت متفننها و نواموزان به استادان در هنر عشق ورزیدن از هر هنر دیگری بیشتر است. علاوه بر شرایط عمومی لازم برای آموختن یک هنر به یک نکته دیگر باید اشاره کرد. هیچ کس به آموختن هنری نمیپردازد بلکه به اصطلاح غیر مستقیم این کار را میکند هنرآموز، قبل از شروع به یادگیری هنر مورد نظر باید چیزهای بسیار دیگری که ظاهرا هیچ ربطی به یکدیگر ندارند را بیاموزد شاگرد نجار کارش را با رنده کاری شروع می کند و کسی که میخواهد پیانو زدن یاد بگیرد ابتدا گام ها را میاموزد اگر هنر آموزی بخواهد هدف زنی با تیر و کمان را بیاموزد اول باید نفس کشیدن را تمرین کند اگر کسی بخواهد در هنری به مقام استادی برسد، باید همه زندگیش را وقف آن کند یا لااقل با آن پیوند دهد. در کار هنری فرد هنرمند به یک وسیله تبدیل می شود و این وسیله باید همواره خود را مطابق با وظایف خاصی که دارد، آماده و در شرایط مناسب نگه دارد. معنای این گفته درباره هنر عشق ورزیدن چنین شود که اگر کسی در آرزوی رسیدن به مقام استادی در این هنر است، باید کارش را با تمرین انزباط، تمرکز و بردباری در کلیه مراحل زندگی خود آغاز کند. انزبات را چگونه می‌توان تمرین کرد؟ اگر قرار بود پدربزرگ‌های ما به این پرسش پاسخ بگویند، دست و بال بازتری داشتند. آنها حتما توصیه می کردند که سهرخیز باشید، خود را در ناز و نعمتهای غیر ضروری غرق نسازید و سخت کار کنید. انضباطی که آنها توصیه می کردند نقایس کاملا آشکاری دارد، خشک و مستبدانه است و بر فضیلت سرفجوی و پسنداز مبتنی است و از بسیاری جهات متزاد و مخالف با زندگی است. اما وقتی در برابر این نوع انزبات از خود اکسل عمل نشان دادیم، تمایل روزافزونی در ما به وجود آمد که نسبت به هر گونه انزباتی با سوء زن بنگریم و بقیه زندگی را با انزباتی، تنبلی و تناسایی بگذرانیم. تا تا بدین طریق زندگی یک نواخت تحمیلی هشت ساعت کار روزانه را ترمیم و جبران سازیم. بیدار شدن در وقت معین، تخصیص مقدار وقت معینی به فعالیتهایی مانند تفکر، مطالعه، گوش دادن به موزیک، پیاده روی در طی روز افراد نکردن بیش از یک حد معین در فعالیت هایی که برای گریز از واقعیت انجام میگیرد مانند داستانها و فیلم های حفظ اعتدال در خوردن و نوشیدن از جمله قواعد آشکار و ابتدایی می باشند. اما نکته مهم این است که تمرین انزبات نباید به صورت قاعدی که از خارج بر ما تحمیل شده است درآید بلکه باید مبین اراده خود ما باشد. انزبات باید فرهنگیز باشد و آدمی آرام آرام خود را آنچنان بدان عادت دهد که اگر وقفی در آن پدید آید، احساس کند که چیزی را از دست داده است. یکی از جنبه‌های آور فرهنگ دنیای غرب از مفهوم انضباط مانند هر فضیلت دیگر این است که خیال می‌کنند آموختن آن باید به نوعی با درد و ناراحتی توأم باشد و تنها زمانی خوب خواهد بود که این درد و ناراحتی را نیز با خود داشته باشد دنیای شرق از قرن‌ها پیش میدانست که آنچه برای بشر و برای جسم و روح او خوب است باید لذت بخش نیز باشد حتی اگر چه فرد مجبور شود در آغاز بر مقاومت خود در برابر این چیز لذت بخش غلبه کند تمرکز در فرهنگ امروز ما کاری به مراتب دشوارتر است چنان گویی همه چیز علیه تمرکز عمل می‌کند و مانع آن است مهمترین اقدام برای یادگیری تمرکز فکر این است که چگونگی خلوت کردن با خود را بیاموزیم، بیان که مطالعه کنیم، به رادیو گوش بدهیم، سیگار بکشیم یا چیزی بخوریم. در حقیقت، توانایی تمرکز به معنی توانایی تنها بودن با خیشتن است و این خود یک شرط مسلم برای توانایی عشق ورزیدن است. اگر من به علت اینکه نمیتوانم روی پای خود بایستم به کسی وابستگی پیدا کنم آن شخص ممکن است یک نجات غریق باشد ولی این رابطه رابطه عاشقانه نیست اگر بخواهیم پیچیده تر بگوییم در واقع توانایی تنها ماندن لازمه توانایی عشق ورزیدن است هر کس که در صدت براید دمی با خود تنها باشد به دشواری آن پی خواهد برد در آغاز انسان احساس بیقراری و ناآرامی می کند. یا حتی ممکن است به استراب عمیقی دچار شود. احتمال دارد که درباره بیمیلی خود به دلیل تراشی بپردازد و به خود بگوید که ادامه این کار هیچ ارزشی ندارد. احمقانه است بیش از اندازه وقت می گیرد و فلان و بهمان. در زم متوجه می شود که انواع و اقسام فکرها به مغزش هجوم می آورند و او را تسخیر می کنند. او می بیند که دارد درباره نقشه بعدی خود یا به یک مشکل شغلی یا اینکه شب باید به کجا برود یا به چیزهای دیگر که مرتب به مغزش هجوم میآورند فکر می کند به جای اینکه به مغز فرصت دهد تا خود را خالی کند. انجام چند تمرین بسیار ساده بیفایده نیست. مثلا در یک حالت آرام نه سست و نه اینکه بدن خود را سفت کنید بنشینید چشمها را ببندید و در این حال سعی کنید پرده سینما را بی آنکه تصویر یا فکری در آن راه یابد در نظر مجسم کنید سپس دم و بازدم خود را دنبال کنید البته نه اینکه به آنها فکر کنید یا از حالت عادی خارجشان سازید بلکه فقط دنبالشان کنید و ضمن این کار آنها را حس کنید علاوه بر این بکوشید که احساسی از من من خودم به عنوان کانون نیروهای خود به عنوان خالق دنیای خودم داشته باشید این تمرین برای تمرکز حداقل باید هر صبح در حدود 20 دقیقه در صورت امکان بیشتر و هر شب قبل از خواب انجام گیرد علاوه بر این تمرین ها فرد باید در هر یک از کارهایش نیز این تمرکز را اعمال کند مثلا در گوش دادن به موزیک مطالعه کتاب در صحبت با دیگران و دیدن یک منظره و غیره کاری را که در لحظه معین در دست داریم باید در آن لحظه تنها کار با اهمیت و مهم تلقی کنیم و خود را کاملا بدان بسپاریم اگر تمرکز کامل داشته باشیم مهم نیست چه میکنیم همه چیز ام از مهم و غیر مهم بوده تازه ای از واقعیت کسب می کنند. زیرا تمام توجه ما را به خود گرفتند. برای آموختن تمرکز فکر، لازم است تا حد ممکن از محاورات پیش پا افتاده، یعنی از حرفهایی که واقعا چیزی ندارند و زاید هستند، پرهیز کنیم. اگر دو نفر راجع به رشد درختی که برای هر دو معلوم است صحبت می کنند یا در مورد مزه نانی که هر دو با هم خوردهاند یا درباره تجربه مشترک مربوط به شغلشان سخند میگویند، همه این گفتگوها مربوط به نظر میآیند، به شرط اینکه هر دو طرف حس کنند چه میگویند. نه اینکه هر یک موقع صحبت دیگری در عالم خود باشد. از سوی دیگر، ممکن است گفتگو درباره سیاست یا مذهب صورت بگیرد و با وجود این باز هم مبتزل باشد و این حالت در مواقعی پیش می آید که طرف این صحبت می کنند و قلب و روحشان جای دیگری است در اینجا باید اضافه کرد همانطور که پرهیز از گفتگوهای بی ارزش مهم است پرهیز از مساحب بد نیز اهمیت دارد منظور از مصاحبه بد تنها خود آدمیان شرور و مخرب نیستند برای این باید از مصاحبت آنان پرهیز کرد چون محیط آنها مسموم و کسالت آور است منظور من همچون این مردهای متحرک است یعنی کسانی که با وجود زنده بودن روحشان مرده است کسانی که فکر و گفتگوهایشان حقیر و پیش پا افتاده است کسانی که به جای حرف زدن گپ میزنند و کسانی که به جای تفکر همیشه عقاید قالبی و از پیش ساخته در آستین دارند. اما همیشه گریز از مصاحبت چنین افرادی ممکن نیست. لزومی هم ندارد. اگر عکس العمل ما طبق انتظار آنها نباشد یعنی قالبی و مبتزل بلکه مستقیم و انسانی با آنها برخورد کنیم اغلب می‌بینیم چنین افرادی رفتار و کردار خود را تغییر می‌دهند که اغلب این تغییر ناشی از بهت و تعجبی است که از برخورد با یک امر غیر مترقبه حاصل می‌شود تمرکز در رابطه با دیگران اساساً به این معناست که بتوانیم به حرف آنان گوش بسپاریم. بسیاری از مردم به حرفهای دیگران گوش می‌دهند و حتی پند و اندرز هم می‌دهند بیان که واقعا به حرفهای آنها گوش سپرده باشند. آنان نه سخنان طرف مقابل را جدی میگیرند، نه جوابهای خود را. در نتیجه از حرف زدن خسته میشوند. آنان در این توهم به سر میبرند که اگر با تمرکز گوش میدادند از این خسته تر میشدند. حال آنکه عکس این درست است. هر نوع فعالیتی که با تمرکز انجام گیرد، انسان را بیدارتر و سر می میکند. گرچه بعداً نوعی خستگی طبیعی و مفید جایان آن را می‌گیرد در حالی که هر نوع کاری که بدون تمرکز حواس انجام پذیرد انسان را کسل و خوابالود می می‌کند با وجود این شخص در پایان روز به دشواری خوابش می‌برد تمرکز داشتن یعنی به طور کامل در زمان حاضر در اینجا و اکنون زیستن نه اینکه ضمن انجام دادن کاری که در دست است به کار بعدی بیاندیشیم نیازی به گفتن نیست که کسانی که همدیگر را دوست دارند بیشتر از هر کس باید به تمرین تمرکز بپردازند. آنان باید یاد بگیرند به هم نزدیک باشند بدون اینکه به بهانه های مختلفی که رایج و عادی است، از هم بگریزند. آغاز تمرین تمرکز ابتدا مشکل است. ممکن است چون این به نظر برسد که شخص ابدا نمی تواند به هدف برسد. شک نیست که بردباری در این کار از جمله ضروریات است اگر ندانیم که هر چیز موقعی دارد و بخواهیم کارها را به زور و با شتاب انجام دهیم محال است بتوانیم هرگز در آموختن تمرکز موفق شویم این در مورد هنر عشق ورزیدن نیز صادق است برای اینکه برداشتی از مفهوم بردباری داشته باشیم کافی است کودکی را که تازه میخواهد راه رفتن یاد بگیرد زیر نظر بگیریم او زمین می‌خورد میافتد، بلند می‌شود و باز هم زمین می‌خورد و با وجود این به کوشش خود ادامه می‌دهد پیشرفت می‌کند تا اینکه روزی بدون افت و خیز راه می‌رود اگر بزرگترها می‌توانستند بردباری و تمرکز کودک را داشته باشند در انجام هدف‌های مهم خود چه کارها که نمی توانستند بکنند هیچ کس نمی تواند بیان کند نسبت به خود حساسیت داشته باشد تمرکز حواس را بیاموزد. معنای این گفته چیست؟ آیا انسان باید دائما به خود بیاندی خود را تجزیه و تحلیل کند یا چیز دیگر؟ اگر می خواستیم در مورد حساسیت خود نسبت به یک ماشین حرف بزنیم، در بیان مقصود اشکالی پیش نمی آمد. مثلا هر کس نسبت به ماشینی که خود می راند حساس است، حتی یک صدای کوچک و غیر و یک تغییر جزئی در صدای موتور توجه او را جلب می کند. به همین ترتیب راننده نسبت به تغییرات سطح جاده به حرکت ماشین هایی که در جلو و عقب او هستند نیز حساس است. در این حال او به کلیه این عوامل فکر نمی کند. ذهن او در یک حالت هوشیاری آرام است. و آماده نشان دادن عکس در برابر تغییرات موقعیتیست است که حواسش را روی آن متمرکز کرده است یعنی ایمنی در رانندگی اگر بخواهیم حالت حساس بودن نسبت به شخص دیگری را در نظر بگیریم کافی است به مثال آشکار آن یعنی حساسیت و توجه مادر نسبت به کودکش نظری بیافکنیم. او قبل از اینکه تغییرات جسمی تقاضاها و استرابهای کودک آشکار خود را نشان بدهند متوجه آنها می شود. مادر از گریه کودک بیدار می شود. در حالی که صدایی به مراتب بلندتر از گریه کودک او را بیدار نمی کند همه اینها نشان می که مادر نسبت به تجلیات زندگی کودکش حساس است مادر مسترب و نگران نیست بلکه در یک حالت تعادل هوشیارانه به سر می برد. و گوش به زنگ هر علامت مهمی است که در کودک دیده می شود. به همین ترتیب هم شخص می نسبت به خود حساس باشد مثلا متوجه میشویم که خسته یا افسرده هستیم و به جای اینکه تسلیم آنها شویم یا با افکار ملالاوری که همیشه به فراوانی یافت می شود آنها را تقویت کنیم میتوانیم از خود سؤال کنیم چه پیش آمده است چرا افسرده شدم؟ همین کار را می توانیم هنگامی که عصبانی و خشمگین هستیم یا به خیال بافی یا به گریز از واقعیات تمایل پیدا می کنیم، انجام دهیم. در هر یک از این موارد، مسئله مهم این است که از وجود آنها آگاه باشیم و به هزار و یک دلیل آنها را ماستمالی نکنیم. علاوه بر این، باید نسبت به ندای درونی خود که اغلب بیدرنگ علت استراب و افسردگی و خشم ما را به ما باز می گوید، گوش فرا دهیم. انسان معمولی نسبت به روندهای جسمی خود نوعی حساسیت دارد. او تغییرات و حتی دردهای بسیار خفیف بدن خود را حس می کند. داشتن این نوع حساسیت نسبت به بدن نسبتا آسان است. زیرا فرد همواره تصویری ذهنی از سلامتی و عادی بودن ارگانیسم خود دارد. داشتن همین حساسیت نسبت به روندهای ذهنی به مراتب دشوارتر است. زیرا بسیاری از مردم هرگز کسی را ندیدند که عملکردهای ذهنش در حد مطلوب باشد. آنها عملکردهای روانی پدر و مادر و خیشان یا جامعه خود را به عنوان هنجار یا نرم برمیگزند و تا زمانی که از آن منحرف نشوند احساس میکنند که عادی هستند و رغبتی به مشاهده نمونه های دیگر ندارند. مثلا چه بسیارند کسانی که هرگز یک عاشق ندیدند، به یک آدم کامل با شخصیت سالم، شجاع و برخوردار از تمرکز حواس بر نخوردند. این واضح است که انسان برای حساس بودن نسبت به خیش، باید تصویری ذهنی از عملکردهای روانی انسانی سالم و کامل را داشته باشد و بداند که اگر کسی در کودکی یا در زندگی بعدی از آن محروم بوده است، اینک چگونه میتواند آن را به دست بیاورد؟ مسلما جواب ساده برای این پرسش وجود ندارد ولی این پرسش به یک عامل بسیار حساس و مهم در سیستم آموزش و پرورش ما اشاره میکند. ضمن تعلیم دانش ما آن آموزشی را که برای رشد بشر از همه چیز مهمتر است از دست میدهیم. آموزشی که فقط حضور ساده فردی کامل و پرمهر می تواند به دیگران بدهد در ادوار گذشته فرهنگ ما و نیز در چین و هندوستان انسان ارزشمند کسی بود که دارای صفات معنوی برجسته‌ای باشد حتی معلم در درجه اول منحسرن کسی نبود که منبع اطلاعات و معلومات باشد بلکه کسی بود که نگرش انسانی خاصی را القا کند در جامعه سرمایهداری معاصر این امر در مورد کمونیسم شوروی نیز صدق می‌کند. کسی را برای تحسین یا برای سرمشق انتخاب می‌کنند که شاید همه چیز دارد جز صفات برجسته معنوی. این گونه افراد کسانی هستند که عموماً در برابر دیدگان مردم عادی جای دارند و به آنها نوعی احساس رضامندی غیر مستقیم می‌دهند. هنرپیشگان سینما، کمدین‌های رادیویی روزدام نگاران، بازرگانان معتبر و رجال دولتی همه مدلهایی برای سرمشق هستند. شایستگی اساسی آنها این است که خبرساز شده با وجود این و از آنچنان هم نامید کننده نیست. اگر به یاد آوریم که مردی چون آلبرت شوایتزر در آمریکا مشهور می شود، اگر مجسم کنیم که برای آشنا ساختن جوانانمان با شخصیت‌های تاریخی یا زنده چه امکاناتی وجود دارد یعنی آن دسته از شخصیت‌هایی که نشان می‌دهند انسان در مقام انسانی خود و نه به صورت کمدیئن به معنای وسیع کلمه چه کارهای بزرگی می‌تواند بکند و نیز اگر به آثار بزرگ ادبی و هنری قرون و اعصار بیاندیشیم چون این به نظر می رسد که برای آفرینش کردار نیکوی انسانی و نیز ایجاد حساسیت نسبت به بدکرداری ها فرصت های گرانبه وجود دارد. اگر نتوانیم تصویر زندگی کامل را زنده نگه داریم، آنگاه امکان دارد سراسر سنت فرهنگی ما فرو ریزد. این سنت بر مبنای انتقال نوعی دانش خاص استوار نیست، بلکه مبتنی بر انتقال انواع خاصی از خصایص انسانی است اگر نسل‌های آینده این خصایص را دیگر نبینند فرهنگی به قدمت پنج هزار سال فرو خواهد ریخت ولو اینکه دانش نهفته در آن کاملا منتقل شده و باز هم تکامل یافته باشد